بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله صلاة و, و على رسول الله و آله امنا الله و حزبهی و عیبت علمه و لا سیمد دایی لا و المنتقم من اعدائه مهدي هاده الامه و خاتم الاعمه خورسندم که در ادامه کلاس خدمتون هستم مجدد تبریک میگم ایام میلاده کریمه آلتها ها حضرت معصوم سلام الله علیه چند نکته عزیزان قبل از شروع جلسه خدمتون عرض بکنم بناس که انشالله این مدرسه فصلی تصوف ادامه پیدا بکنه حالا با موضوعاتی که مطرح میشه و هیات علمی در نظر دارن ادامه پیدا بکنه انشالله در راستای گفتگوهای آزاد علمی لذا سروران و عزیزان و فرهیختگان از کانال ایتا انشاءالله خارج نشن که برنامه های تابستانه، پاییزه زمستانه و همینطور ادامه خواهد داشت هم همفکری و جلسه ای که بتونیم یک راه زیبایی رو پیش بریم و بحثهای علمی مطرح بشه بیش از پیش لذا از کانال ایتا خارج نشید نکته دومی که حتما برای بهتر شدن جلسات و گفتمان های آتی در مدرسه فصلی تصوف نظرسنجی رو حتما شرکت کنیم نقطه نظراتتون مطالبی که به ذهن مبارکتون میرسه بفرمایید که انشالله اعمال خواهد شد توسط در موضوع وحدت شخصی وجود وحدت وجود اینطور تعبیر بکنیم بهتر گاهی اوقات عرفا سخنی میگن که فلاسفه نمیپذیرند گاهی اوقات خیر صوفیه حرفی میزنند که عرفا نمیپذیرند گاهی اوقات عرفا حرفی میزنند که صوفیه نقد میکنند هر کس از یک به قول هر کسی از زن خود شد یاره من و اهل حکمت چیزی میگوین اهل تصوف خانقاهی چیزی عارف صوفیان تعبیر دیگری دارند و عرفان اسیر شیعه چیز دیگر در این زمینه و موضوع با اهمیت اعتقادات که واقعا چگونه بگیم کم بهش پرداخته شده در حوزه‌های علمیه و مراکز علمی با وجود اینکه زیربنای تمام باورها زیربنای تمام رفتارهای فردی و اجتماعی هر انسان باورهای اوست متاسفانه به باورها کمتر پرداخته شده و بیشتر به هواشی و مطالب پیرامون پرداخته شده حالا اینکه دشمنان فهمیدن که باورها سرچشمه کنترل رفتارهای فردی و اجتماعی افراده چرا فرق سازی میکنن؟ چرا در انگلستان نشسته بهاییت و تقویت میکنن؟ یا تصوف خانقاهی؟ یا احمد الحسن رو به راه میندازه؟ یا دنبال بهاییت چه چیزی در جیب من میره چه چیزی به حساب من میاد چه قدرتی به من انتقال داده میشه که یک نفر در قوم اوملغورای شیعه احمد الحسنی باشه یا شیعی یا در جا اخسانوقات دنیا اندیشه او چه فرق میکنه که داعش باشه یا شیعه باشه <تصفح> به طب کنترل افکار دیگران با اون پک فکری که در ذهن مردم و جامعه نصب میشه میتواند افراد روی رفتارهای فردی و اجتماعی اونها رو کنترل بکنه متاسفانه امروزه در جامعه شیعی ما جوانها باورهاشون رو خیلی مبرهن و قوی نکردن یعنی روی باورهای جوان کار نکردیم گویا در فروع دین به افرادی تذکر میدیم که اصلا باور ما رو قبول ندارن از اساس باور رو نمیپذیرن شاید برای اینکه ابتدای سخن کمی خستگی شما و همچنین استاد معظم کمی لبخند بر چهره زیباشون بیان گفته یکی دیدن داش روزه می خورد گفتش که شما جز اکثریت های مذهبی هستید گفت نه من جز اکثریت دینم امروزه نگاه میکنیم توی جوانها میبینیم اصلا باورها رو از کنار زدن و متاسفانه این باورها باید از همین لجنه های علمی چکشکاری بشه شما فرهیختگان قطعاً گذاران در جامعه شیعی هستید مفتخرم که محضر استاد معلمی هستم از اندیشمندان معاصر در زمینه فلسفه معرفت شناسی عرفان و استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم الحمدلله رب العالمین این است برای ما حاجو خدمت شما باشیم مدیر گروه فلسفه و کلام مدرسه مرحوم امام رحمت الله علیه از مرکز جهانی مدیر گروه فلسفه و کلام حوزه علم خوهران ازوهیت علمی مؤسسه حاجو اگر بخوام بگم تا غروب طول میگشه و استاد استاد استاد و آثاری چقدر زیبا مطالعه میکردم آثاری علمی دقیق و عالی که واقعا بعضی از آثار رو من قبلا مطالعه کرده بودم و استفاده کردم و باید ما بقیه رو هم مطالعه کنم آثار جالبی دارن هاجا و قطعا آه... کتاب مرتبط با بحث ما حکمت متعالیه است که از آثار جناب استاد مولدیمی هست بررسی انتقادی برخی ادله وحدت شخصی وجود رو اونجا مطرح کردن من سخن کوتاه کنم و وقت رو بسپرم به حاج آقای که استفاده کنیم از محضرشون با سلوات بر محمد و آل محمد اللهم سلام شروع کنم بسم الله جما بسم الله الرحمن الرحیم ربه نستعین انه خیر ناصر و معین و سل الله علی محمد و آله تاهری اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج انده اولا تشکر میکنم از کاران این جلسات علمی و نقد های علمی و تبریک ارز می کنم این ایام رو که تولد حضرت فاطمه معسومه هست سلام الله علیها و در واقع منور می شویم به انوار این معسومین و کسانی که مربوط و متعلق به این معسومین هستند و من جمله حضرت فاطمه معسومه <coughs> سلام الله علیها و تشکرم از عزیزانی که ما مصده اوقاتشون هستیم و امیدواریم که مطلبی که میگیم واقعا سودمند باشه بنده ابتدا عرض بکنم یه چند تا نکته را عرض بکنم بعد وارد بحث بشیم ببینید ما به قول بعضی از بزرگان در طول تاریخ هم دوستار افراطی فلسفه و عرفانو داشتیم هم مخالف افراطی دوستدار افراطی به کسی میگیم که اصلا حاضر نیست عرفان و فلسفه نقد بشه فکر بکنید که هر چی تو کتب عرفانی یا تو کتب ملا سادات مقدس و نباید نقد بشه و داریم وقتی من توی جلسه ای ارث کردم که من دوست دارم یه نقدی بر خصوص محیدی بنویسم شد که اساتید عرفان آقا اصلا عرفان که نباید نقد بشه، باید فقط فهمیده بشه وحیه وحی که نیست که بلاخره انسان ها ولی مطالب من توش زیاده ولی بالاخره مطالب قابل نقدم توش زیاده لذا بعضی تلقیشون متاسفانه حتی گفتم آقای جوادی در اون تحریر تمهیدشون تمام عدله عرفا رو بر وحدت شخصی وجود نقد کردند و حتی از علام هی کرارن نقل می که عرفا نتونستن مدعیات خودشون رو برهانی بکنن ایشون میگن نه ایشون هم نبد نقل میکرد بودن مگه داستان مگه قصه نویسیه اگر علمه اگر قبول دارید مثلا فرض کنید در تمهید القواعد ابن ترکی میخواسته عرفان رو استدلالی بکنه خب ما تعلیقه شرحی نوشتیم بر تمهید اونجا نشون دادیم که قصد استدلالی کردن داشتن ولی خیلی موفق نبودن اینا میشن محب قلب قول معروف دوستار افراتی. حت طرم یه یه دی اصلا میگن اقا عرفان و کلم زور فلسفر ای هم به نظر من بیانصافیه بالاخر شهید متحریب با همین فلسفه یک زمانی در مقابل افکار متعدد معرفت شناسی هستی شناسی خدا شناسی ایستادی آی همینجور و بزرگان دیگه بالاخر نقاط مثبت قابل استفاده قابل بیان یعنی مبانی باشه بر اندیشه های اسلامی و معارف اهل بیت ما که اصل کار ما همون معارف اهل بیت و مبانی معقول اوست لذا این دو گرایش به نظر من برگردن به انصاف و قبول کردن که بله نقاط قوت داره نقاط قابل نقدم داره حالا عرفان البته بیشتر فلسفه کمتر ولی بله هر دو در واقع قابل نقد و بررسی است. منطقه منصفانه اول دم بفهمه چی میگن نفهمیده رد نکنه درست دقیق بفهمه خوب خوب متوجه بشه من حتی اون تمهید و رو که میخواستم شرح و نقد رو اینا بنویسم خوب دادم به بعضی از اساتید عرفان گفتم اقا بدید به دستاتید ارفان مطالعه کنن هر جا من نفهمیدم میگن اقا تو حرف عرفه رو بد فهمیدی من اصلاح کنم کار خودم رو دادن حتی نه اون مطالعه حتی بعضی از اساتید ارفان گفتن که کاش کتاب ما چونم یک کتاب تعلیقی بر تمهید نوشته بود گفت کاش کتاب من یک کسی اینجوری نموداری میکرد. گفتم این البته کار خودته کار کسی دیگه نیست یعنی بعد خودت چون کتاب ما نموداری کردیم چون تمهید یه مقدار گوی مبتداش تو این درس خبرش تو چه 5 درس اونورتره یعنی جوابش مثلا لذا بعد یه نموداری باشه که این انسجام مطالب حفظ بشه پس این دو تا نکته رو ما توجه داشته باشیم ما در این قصد تخریب یا تمجید نداریم قصد یک نقد و بررسی خیلی منصفانه مستند آلمانه داریم لذا توقع داریم که یعنی هیچ ناراحت نمیشیم کسی اگر نقدهای ما رو نقد کنه من یادم این آقای فییزی میگفتن که چرا نقد میگویم آقا شما بشین نقدهای من رو نقد کنیم و من کتابی نوشتم فرض کنید نقد بعضی از مباعثالا یا ارفانی شما هم کتاب من رو نقد کنید من خیلی هم خوشحال میشم. چه بسا ممکنه من دست از عقیده خودم بر ندارم. ولی زاویه دیدم عوض میشه. مالان مجموعه عالی حکمت که من اونجا توفیق خدمت دارم. اونجا ما یه وقتی خدمت آجایی مسبوع ارز کردیم که آجا شما با جوادی می نشستید اختلافات فلسفی عرفانیتون رو مطرح می کردید و با هم دیگه او از ما گذشت. زمینه برا ما نیست ولی سعی کنید از حالا بعد این زمینه رو در اساتیدتون ایجاد بکنید که بعدا که به یک مثلا فرض کنید سن ما رسیدن دیگه برایشون کاملا عادی باشه و اطباقا مجموع همینجوری الان دو هفته یک بار حکمت چی فلسفه معرفت چناسی ارفان توازه سیزده تا گروه اساتید و محققین اون رشته جمع میشن یه بحثی مطرح میشه و مورد نقادی قرار میگیره تا تو فلسفه خوب خیلی وقت آقای فیضیه میاد نقداشو میگه بعد مثلا فرض مورد نقد و بررسی قرار میگیره این خیلی عالیه یعنی یک فضای کاملا علمی برای اینکه مطالب مورد نقد الان کار ما هم در واقع همینه یعنی جنبه دوستداری افراطی و دشمنی افراتی نه یک وضعیت کاملا چون هر دو علم از کدم جزء علوم مفید و لازم مجموعه اندیشه اسلامی هستند و افراد خدمتگذار زیاد از توش واقعا ما داشتیم هم در عرفان هم در فلسفه ولی هیچ علمی چون وحی الهی نیست کلام معصوم نیست خب قطعا نقاط قوت داره نقاط ضعف داره که این نکترم من و اما بریم سراغ بحث وحدت شخصی وجود ببینید من اول عرض بکنم در باب وحدت شخصی وجود ادهی میگن همه خدا یعنی همه خدایان به این معنی که اصلا عالم مجموعه عالم خداست یعنی کعنه این میز جزء خداست مثلا خوب این عرفای خب این ما اینو نمیگن ادعا میگن اصلا هر چی که غیر خداست ممتنع معدوم محض الان ما داریم بعضی از اساتیده یه نفره بنده خدا از اساتید عرفان که میگن اصلا همه ممتل الوجودن هم. فقط خدا واجب الوجود خوب اینم مولا ساده که اینا جهله صوفیه محسوبشون میکنه میگن واقعا اونی که عرفا میگن نه میگن خدا هست واسه الله همون تا همه تجلیات الهیان، ظهورات الهیان که حالا بعد بفهمی منظورشون چی. بعد میگیم خب وجودی زائد بر خدا دارن میگن نه به عین وجود خدا موجودن مثل موج دریا. موج دریا وجودی زائد بر دریا نداره ولی بالاخره غیر از دریا دریا گاهی موج داره گاهی نداره بالاخره موج غیر از دریاس دریا غیر از موج ولی هر دو به وجوده واحد موجودند، نکته مهمش اینه و ما این دیدگاه رو بیشتر بشناسیم بیشتر آگاه بشیم یه مقدماتی لازم داره یکی اینکه اولا موجود وارد بحث داریم می‌شیم ما موجود دو تا اطلاق داره هم در فلسفه ما هم در عرفان ما این آقای عبودیتم تو کتاب‌هاش اولین جایی که من دیدم و خیلی خوشم اومد ایشون بود در بحث اضافه که اضافه وجود داره نداره اونجا بحث خوبی رو کرد. گاهی میگیم موجود مثلا میگیم الف موجود است یعنی دارای تحقق اینیست مثل این چوب مثل سندلی مثل میز مثل آسمان مثل زمین مثل خاک مثل خدای متعال واجب الوجود تحقق اینی داره وجود به ذات داره به تعبیری. ولی گاهی میگیم موجود یعنی تحقق اینی زائده بر منشه ای نداره به عین منشه ای موجود مثل وحدت مثل امکان الان ما همه ممکن الوجودیم ولی امکان وجودمون وجودی زائده بر ما یا صفات حضرت حق خداوند صفات داره عالمون قادرون ولی صفاتش وجودی زائده بر ذاتش ندارن به عین ذاتش موجودن ما به این میگیم صدق اتصاف. یعنی گاهی موجودن، یعنی تحقق اینی گاهی موجود یعنی صدق و اتصاف یعنی اتصاف حقیقی است واقعا شی به اونها به وحدت متصف میشه واقعا به امکان متصف میشه واقعا به وجوب متصف میشه واقعا به عالمون قادرون خداوند متصف میشه ولی اینها وجودی زائده بر ذات حق نداره در باب وجود و ماهیت هم که این اصالت با کدومه هم همینه میگن اونایی که میگن اصالت با وجود میگن وجود تحقق عینی داره ماهیت به تبع وجود موجوده به عین وجود موجوده و وجودی زائد بر وجود نداره این یه نکته بسیار مهمه عرفا ببینید حالا اینجا تو این قضیه فرق عرفا و فلاسفه چیه فلاسفه میگن که هم خدا تحقق عینی داره هم موسولا موجود یکی مخلوق دیگریست یکی آفرید آفریده شده توسط دیگری است خدا خالق اینا مخلوق خدا علت اینا معلول خدا واجب اینا ممکن ولی دوتا وجود جدان ولی عرفا میگن چی طبق این تعریف کردیم میگن خدا تحقق عینی داره ما تحقق عینی ندارن بلکه فقط صدق و اتصاف دارند. یعنی به عین وجود خدا موجودن پس عرفا یه تعبیری که جناب آیه مصباح رضوان الله تعالی علیه در کتاب تو کنم شرح شفا بود فرموده بودن عرفا کسرت رو منکرن نه نه نه عرفا کثرت رو منکر نیستن حالت ایشون شاید مخواست همین عرض من رو بگه شاید منظور این بوده تفسیرشون از کسرت با فل... فیلسوف متفاوت فیلسوف میگه کسرات تحقق عینی دارن در کنار تحقق عینی خدا من تا مخلوق خدا عارف میگه نه دیگه ما سوالله تحقق عینی در مقابل خدا ندارن بلکه به عین وجود خدا موجودن مثل موج و دریا آره. ولی کثرت رو منکر نیستن نمیگن آقا قبر و قیامت و جهنم و بهشت و انبیا و اولیا خدای نکرده خدای نکده معدومن یا ممتنهن یا خیالننه نه البته تعاویر شعریشون و حرفایی میزنن ما عدم هاییم هستی ها نما تو وجود ما یا هستی ما اینا دارن متاسفانه ها که غلط اندازه به نظر من این تعاویر خوب نیست تن یعنی یکی از نقدی که گاهی به شعرهای مولوی و عرفا وارد ها یک کمی یه جوری حرفا این سوء استفاده قرار نگیری ولی شاید قرض اقصاتون یه چیز درستی بوده ولی یافتید لفظ دو پهلو شد قابل سو استفاده و اتفاقا سو استفاده هم زیاد شد همین در و صوفیه همین حرفا رو گرفتن چیزای دیگه‌ام بهش افتودن شده یک فرقه یک فرقه مثلا منحرفی در حالی که اگر سافتر روشنتر واضحتر صحبت میکردن نمیگم باز غلط نبود یا اشکال مشواره بود حداقل مطلب روشن بود قابل سوء استفاده نبود ولی خود مطلب ممکنه قابل نقد باشه ها ولی دیگه قابل سوء استفاده انحرافات فرقه ای نمیشه تا ولی اینه که در واقع اینم از این نکته بعدم اینه که تشکیک ما دو تا تشکیک داریم تشکیک در وجود دو تفسیر برای تشکیک داریم دو تفسیر برای بسیط الحقیقت کل الاشیا متاسفانه بیشتری یه تفسیرش الان تو اساتید فلسف و ارفان گفته میشه اون تفسیری که با وحدت وجود میسازه در حالی که به نظر من هم تقریری از تشکیک داریم که با وحدت وجود سازگاری نداره با کثرت وجود میسازه هم تفسیری داریم از بسیط که باز با کثرت وجود میسازه تشکیک حالا چون بحثی داره خیلی تشکیک ببینید ما یک در تشکیک میگن آقا ما به اشتراک و ما به الامتیاز به یک حقیقت برمیگردند درست هم هست. گاهی موجودات متباینن یعنی هیچ بچه مشترکی ندارن همش بچه اختلافه خب اینو ما تو فلسفه اسلامی کسی متباینی به تمام ذات بین موجودات نگفته همه قائل به یک نحوه اشتراک هستن چون میگن از همه حقیقت، از همه حقایق وجود انتظام میشه محاله که متباین به تمام زاد باشن از همه هم وجود انتظام بشه منتها پس قائل به وحدت تشکیکی هستن منتها ما یک وحدت سنخی داریم، یک وحدت شخص خیلی‌ها این وحدت رو فقط وحدت شخصی تفسیر میکنن اصلا وحدت سنخی رو میگن به تواین برمی‌گردن حالا که نه تواین یعنی موجودات هیچ وجه اشتراکی ندارن حالا ممکنه قائلم داشته باشه ولی منظورش اینه که آقا موجودات چه ما ممکنات چه ما با خدا هیچ وجه اشتراکی نداریم هیچ مطلقا ولی تشکیک با وحدت سنخی میگه نه بابا بالاخره هممون وجود داریم معدوم نیستیم از این جهت هم همسر اما شدت و ضعف وجود ما کجا خدا کجا اون بی ما ما در مقابل دریا نیستیم مثل میگن عدد صحیح نمونی که ریاضی خوندن میگن عدد صحیح روی بی نهایت ما به صفر داریم ما در مقابل خدا میل به صفر داریم یه شعر خوبی هم سعدی داره این قضیه که حالا من شعر شعرم مضمونش اینه که میپرسن از عارف که تو که میگی خداوند متعال وجود داره و در واقع ماسوا وجود ندارن چه منظورت میگه نه وجود دارن ماسوا اما وقتی با خدا قیاس میشن که انه وجود نه این که وجود ندارن یا مثلا در واقع ما وحدت شهود را با وحدت وجود باد جدا وعده بکنیم میگن آقا رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، نه بجز خدا نباشد. نبیند خوبه، ولی بله انسان عارف به جایی میرسه که واقعا فقط تمام توجهش خداست، غیر خدا اصلا نمی بینه این عیبی ای نداره. این با کثرت وجودم میسازه. اما عرفا مدعیان که نه نبیند، نه نباشد، اصلا غیر از خدا وجودی نیست، وجود تحقق عینی. بلکه اگر هم هست به عین وجود خدا موجوده. یعنی صدق اتصاف خب وحدت سنخی مثل چی من این مثال ساده بزنم ببینید شما فرض کنید که یک سینی ده تا آب میوه توش میدارید تو لیوان پنج تاش آب سیبه پنج تاش آب پرتقاله خب اینا به شخصی دهتا تا و هم دیگه فرق دارم خیلی روشانه دیگه ده تا لیوانه یعنی هیچ جای انکار نیست که ده تا لیوانه یک لیوان نیست ده تا لیوان جداست و هر کدوم لیوانم غیر از دیگری مثلا این لیوان لیوانو بخوری اون لیوان دیگه خورده نشده اون هنوز هستن این بریزه بشکنه بریزه از بین بره اون رو سر سریجاشون هستن پس به لحاظ اشخاص ما 10 تا لیوان آب میوه داریم ولی به لحاظ سنخ چی چند تا داریم؟ دوتا تا یه سنخ آب میوه سنخ آب پرتغال سنخ آب سیب پس ببینید میشه اشخاص متعدد باشن ولی سنخ واحد باشند. اینو میگن وحدت سنخی پس تشکیک یکی از تفاوتش که آقا عالم موجودات عالم خداوند ممکنات وحدت سنخی دارن نه وحدت شخصی سنخشون به این معنی نیست که در عرض هم مساوین اعبد و اصلا هم چیزی نمیگن میگن خداوند نامتناهی شدتان و خیلی از همه جهات درجه وجود و ما همه اصلا محدودیم و نسبت ما با خدا میل به صرف داره ما عددی حساب نمیشیم در مقابل خدا لذا لایسه که مثل ایشه یه جاش محفوظه مثلا مثل مثل خورشید با یک نور شم با بازم مثال دقیق نیست لذا اونایی که گفتن رسد آدم به جایی که جز خدا نبیند درست میگن بگن خرش... تا شب یه شمم روشان کنی خیلی نورش پیداست ولی تو وسط زور با درخشش آفتاب اصلا نور شمعه پیدا نیست در به چشم نمیاد ما در مقابل خدا اصلا به چشم نمیاد واقعا همینطوره ولی عارف بالاتر از این میخواد بگه میگه اصلا ما نیستیم تحقق عینی نداریم صدق اتصاف داریم خب پس تشکیک با وحدت سنخی اینو فلاسفه قبول دارن و حرف حقی هم هست اما تشکیک با وحدت شخصی یه تفسیر دیگری است که مل صدرا بیان کرده میگوید ببینید فرق ببینید ملا صد را با عرف مقدار تقریرشون از وحدت شخصی متفاوته آسید مصطفی هم همین بوده نظرش ببینید فلس... عرف میگن وجود یکی بیشتر نیست یه مرتبه بیشتر نداره با حوال حق واجب الوجود بقیه مظاهر این وجودن تجلیات این وجودن ولی ملا صدرا میگه نه وجود یکی بیشتر نیست ولی مراتبی دارد خود وجودها عرفا برای وجود مراتب قائل نیستند میگن وجود یکی بیشتر نیست مرتبه هم یکی بیشتر نیست بقیه مظاهرند ملا صدرا میگه نه وجود یکی بیشتر نیست ولی مراتبی دارد عالی ترینش واجب الوجود است درجات پایین ممکن الوجود هم و حتی مادی‌اند ولی یک وجوده، خوب دقت بکنید، یک وجوده که صدرش واجب از زیلش ممکن صدرش مجرد از زیلش آی فیزی یکی از اشکالهایی که به این تقریر میکنه میگه این تناقضه نمیشه که یه وجود واحد هم واجب باشه هم ممکن هم مجرد باشه هم مادی بنده معتقدم که این اشکال شاید بشه جواب داد که یکی بگه آم و که میگه صدرش واجبه نمیگه همش واجبه همش ممکن که شما بگید تناقضه میگه صدرش واجبه زیرش ممکن تناقض درست نمیگه تناقض برطرف میکن مثل نفس میگه آقا نفس صدرش عقل زیرش احساسه عقل و خیال و حس عقل مرتبه عالی حس مثل پرشم من مثال میدم به پرچم پرشم جمهوری اسلامی خب مثلا چرنگی سبز و سفید و قرمز احسن یه پرچمدلی سرنگه سه سر مرتبه داره حالا برای تقریبه به ذهن وا الله مثال ولی نفس مثال خوبیه ملا صدرا که میگه من عرفه او فقط عرفه را از این بابات حالا از این بابات نه کاری ولی ایشون حتی اینجا هم گفته پس عرفا میگن یک وجود با یک مرتبه ظهورات متعدد ملا صدرا میگه یک وجود با مراتب مختلف مرتبه عالی خدا مرتبه دانی عالم ماده و حالا مولا صدره که میخواسته وجود رو یه مقدار وجود ممکنات رو از عرفا قلیزتر بکنه چون عرفا میگفتن ما موجود تحقق عینی ندارن فقط صدق و اتصاف داره مثل موج دریا که انهو میخواسته یه مقدار وجود ممکنات رو بنجسته تر بکنه ولی بازم دست از وحدت شخصی وجود بر نداشته ولی در وحدت سنخی که مثل آقای مصفاه، آقای و قائلن، نه میگن باز تحقق عینی یکی نیست یعنی یک وجود نداریم، ما هزاران هزار وجود داریم منتها یکیش واجبه در بینهایت درجه وجود، بقیه همه ممکنات هست ممکنات ممکنه هست درجاتی داره در خودشون الاخره مرتبه عقل و حس و خیال و انبیاء الهی مرتبه وجودشون عالی ترینه تو انبیاء باز پیانبر ما از همه عالی تره و اهل بیت و همینجور اینا رو قبول دارن منتها میگن وحدت سنخی دارن نه وحدت شخصی و این خیر از توایان وجوده متاسفانه بعضی از اساتید فلسف و ارفان تا میگی وحدت سنخی میگن این وحدت, وحدت, وحدت سنخی در واقع همون تبایونه در حالی که نه تبایون میگه آقا اصلا بین خدا و ما سوالله یا خود ما سوالله اصلا هیچ سنخیتی به هیچ وجه من الوجوه نیست تبایون به ذات ولی نه که میگه نه بالاخره از همه وجود انتظار شده که محاله که تبایون صد در صد داشته باشن ولی وجود از همه انتظاه بشه پس معلوم میشه در اصل هستی یکسان همون در شدت و... مثل نور, ببینید؟ نور نور ده درجه با نور 100 درجه همه نورن. نمی‌تون میگه این نور است اون ظلمت. نه، نورن. الا اینکه یکی ضعیف، یکی شدید. در باب تشکیک سنخی هم اینه منظورشون. همثال آقای مصباح که می‌فرمایید. خب اینا که روشن شد. حالا ما بریم سراغ ادله عرفا. ببینید عرفا خودشون خدود شاید هفش دهت دلیل خود عرفا اقامه کردن و من هر دهتاشو رو تو یک از کتاب اوردم، آی جوادی هم تو تحریر تمیل ابردن و همه رو نقد کردم. اشکال اون دهتا چیه؟ البته هر کدوماشون ای اشکالات جزایی دارن ها، ولی اشکال مشترکشون اینه که اینا میگن حقیقت وجود من حیص و یه لا تقبل الادم لذاتها و کل و یقبل العدم لذاتها لذات ها فهی الوجود میگیم خب خوبی حقیقت وجود یعنی یک مصداق داره یا مسادق متعدد داره اینا فرض میکنن که فقط یک مصداق داره تن اولین اشکالی که بشون واردش شما میگه ثابت کردید وجود فقط یک مصداق داره آی جوادی هم داره تو تحریر میگه یک اشکال مشترک الورود به همین ده دلیلشون اینه که شما اول باید ثابت بکنید وجود فقط یک مستاق داره در خارج خب اگر یه مستاق داشت به حوال حق البته این قطعا واجب الوجوده چرا؟ چون این مستاق یا واجبه یا ممکن اگه واجبه ثبت المددو اگه ممکنه دو رو تسلسل لازم میاد چرا؟ چون اگر ممکنه علت میخواد فرض که یکی بیشتر نیست پس علت یا میشه معلول بلا علت یا میشه خودش علت خودش هر دوش محاله پس بله اگر یه مستاق در خارج داشته باشیم ه... ه... کنا جواد اینجور سوال میکنه میگه حقیقت الوجود من حیث هی هی لا تقبل العدم لذاته این حقیقت وجود مفهوم عام وجود است که دارای مسادیق است یا یک مستاق وجود است اگه بگید یک مصداق خب بس ثابت کنید شما هنوز ثابت نکردید فرض گرفتید چرا؟ چون شاید مخالف شما بگه نه آقا این حقیقت الوجود مفهوم کلیه وجود است که دارای مسادق متعدد است یکیش خداست بقیهش مخلوقات الهی کجا ثابت کردید تباین باطل است و تشکیه سنخی باطل است هنوز که ثابت نکردید که؟ پس تمام دهدلیتون لزام کرارن از مرحوم علام نقل میکردیشون که علام فرمود عرفا سعی کردن مدعیات خودشون رو ارفانی کنن چی؟ استدلالی کنن ولی نت اینی که توانست ملا صدرا بود لذا ملا صدرا طریق دیگری پیمود رفت از راه ربط اللی و بسیط الحقیقه میخواست وحدت شخصی رو اثبات بکنه. حالا من اول اون بسیط الحقیقه شو میگم که اگر اون ربط اللیش نرسیدیم که لبستم شاید برسیم ببینید بسیط الحقیقه باز خودش دو تقریر داره یه تقریر داره اینا رو من تو کتاب من نوشتم جایی هم به این شکل فقط جرا یه تشکیکی تو, تو نوشته های آقای جوادی دارم که آقا تشکیک دو تفسیر داره یه تفسیری که با وحدت شخصی میسازه یه تفسیری که با کسرت شخصی میسازه چطور؟ ببینید به عدلش که نگاه میکنیم میبینیم دو تا تفسیره یک دلیل برای بسیط و اینه که آقا هر علتی، از معلول خودش کاملتر تره خب این روشن هر علت هستی بخشا علال مادی اینا که الان پارو میزنید توب را میفته نه علتی که علت معلول رو از کتم عدم اصلا نبود ایجادش میکنه این قطعا مقام علت و درجه وجودی علت از معلول بالاتر باید باشه باید اشرف باشه خب تا برسیم به اون علت هر چقدر بالاتر بریم علت باید اشرف باشه تا برسیم اون علتی که فوق او دیگه علتی نیست اون دیگه کامل ترین علت جامعه ترین علت و حتی بینه های علتی از جهت درجه وجودی بینهایت و میشن واهوال حق خب این این دلیل برای بسیط الحیقه نفی کثرات نمی‌کنه بیا کثرات هستن معالیل هستن تحقق هم دارن ولی اون عالیترینشون نامتناهیست، تمام کمالات وجود رو داره و درست هم ولی یه تقریر میگه نه وحدت شخصی وجود، چجور؟ میگه آقا، هر بسیتی خود موجودات هرچی بالاتر میرن، بساتتشون بیشتر میشه بساطتشون که بیشتر میشه، کسرت درشون زائل میشه وقتی به اون عالیترین درجه میرسن دیگه هیچ کسرتی درش راه نداره خب هیچ کسرتی راه نداره، کسرت مادی ندارن کسرت... حتی کسرت از وجود و عدم هم ندارن خب یعنی چه کسرت از وجود و عدم هم ندارن؟ یعنی نامتناهی اند. یعنی یک وجود نامتناهی خب میگین باشه سمرهش میگن ها. نامتناهی جا برا غیر نمیگذاره وقتی خدا شد نامتناهی شو حالا یه توپ نامتناهی واسه یه توپی داری توپر شدن این اگر نامتناهی بشه دیگه تصور داری یک توپ ولو با قدر دو سانتی دیگه در این عالم موجود بشه ابدا. چون دیگه جا برای توپ دیگه نمیداری، چه کوچیک چه بزرگ میگن اون بسیط الحقیقه میگه خدا نامتناهی نامتناهی هم جا برای غیر نمیگذاره اینجا جنوب آقای... حالا اینجا البته جوابایی شده که بعضی مثلا ام... کسانی که مخالف وحدت شخصی بودن گلتن نه این نامتناهی از در مح... در ممکنات معنا داره در مادیات در خود اصلا متنای و نامتناهی بی معناست. نه به نظر من تو تعابیر روای نامتناهی داریم در همون قطبه که بله لا حدل حد استفاتهی و نقوتهی و فلاه نه نامتناهیست ایبی نداره اشکال خیلی خوبی به این برهان دارن میگن آقا جان چون بهترین برهان عرفا اید بهترین برهانی که دیگه خیلی آی جوادی که کرارن در فرمایشات چون دارن و خود عرفا هم دارن که ای خدای بی نهایت جز تو کیست چون توی بی حد و قایت جز تو چیست و دیگه آی فیزی میفرماید زمانی نامتناهی جا برای غیر نمیگذارد. که تداخل وجودات رو قبلا ثابت کرده باشید که محال است بله اگه تداخل وجودات محال باشه خدای نامتنایی جا برای غیر نمیذاره وحدت شخصی وجود قابل اثبات منطقه قبلش باید ثابت کرده باشید که تداخل وجودات محال نیست ما لازم نیست ثابت بکنیم تداخل وجودات واجب است نه نه نه نه نه شما که مستدلید باید ثابت بکنید که تداخل وجودات محاله و حالا هیچ کسی اینو ثابت البته بیاناتی آوردن ولی بعد مثال میدن آقای فیزی میفرماید که ببینید شیشه نور ازش رد میشه ولی نه نور تو شیشه میره نه شیشه تو نور داخل همه هم هستن. حالا ممکنه کسی تو مادیات مناقشه بکنه که نه آقا این نوره از خلل و فرجه مثلا شیشه رد شده از اون جای مثلا جرمدار شیشه رد نشدی که به نظر من رد شده. واقعا از همون جرمداراش رد شده. ولی بر فرض میگه اون این بر به ذهن بود. شما در کلام آقا امیرال دارید داخلون فل اشیا لا بل خارج عن ان الاشیا تصریح داره که خدا داخل در اشیاء ولی ممازجه ای در کار نیست. ممکن ممکنه شما بگن خوب شما که با یه روایت بخواهید ثابت کنید تداخل موجودات ممکنه؟ نه نه مسته ثابت کنید ممکن یا غیر ممکن شما باید ثابت بکنید تداخل وجودات محاله و هیچ جا اینو ثابت نکردید لذا نمیتونید ادعا بکنید نامتناهی جاورا غیر نمیگذاره. اینم یکی دیگه از دلیل خیلی مهم هسته به نظر من بهترین دلیل عرفا این دلیله که اینم با این احتمال ادا جاอัล احتمال بطل الاستدلال میشه. یه دلیلم ربط علی ملصادات که خیلی روش مانور میدن. و ببینیم چیه این ربط علی. اون توجه بکنید من دارم خیلی خلاصه و مهندم بیا عرایزه من گویا هست یا نیست یعنی ابهامی اگر داره بفرمایید. من سعی میکنم که خواهش, من خواهش من. ربط علی به نظر من از ابتکارات ملا صدرا به یک معنا نیست ابن سینا هم داره ولی به یک معنا از ابتکارات ملا صدرا ولی ابن سینا نداره ولی اونی که از ابتکارات ابن سیناست و اختصاصی به ملا صدرا نداره اون به نظر من درسته و تمامه اونی که ملا صدرا ادعا کرده زائده بر فرمایش ابن سینا به نظر من قابل نقده حالا عرض میکنم خدمتتون خدمت تو. ببینید در علل غیر هستی بخش پا به توپ توپ را می افته. شما هستی پاتم هست توپ هم هست بین شما و توب چی میشه؟ یک رابطه یه برقرار میشه یعنی شما توب رو به حرکت در میاری اینو میگن علت و معلول مرتبطه به همه. با هم با همدیگه ارتباط برقرار کردن ولی ذات علت بود ذات معلول هم بود الیتی در کار نبود یه دفعه الیتی حاصل شد شما زدی به توب حرکت کرد این در علل هستی بخش علل طبیعی محرک ولی در علاله هستی بهش قضیه متفاوته یک علتی که الان هست و معالیلش اصلا موجود نیستند، مثل خدای متعال که بود ما نبودیم بعد ما رو آفرید او دیگه نمیتونی میگیم آقا علت بود معلولم بود بین علت و معلول یک ارتباط برقرار شد اصلا قبل از ایجاد معلولی نبود تا بخواد بعداً ارتباطی برقرار بشه اونجا تعبیر اینه که ها معلول عین ربط به علته چیزی شبیه نور خورشید ببینید خورشید تا نبود نوریم هم نبود خورشید آمد نورم آمد خورشید نورش کاملا وابسته به خورشیده اینجوریه که آقا خورشید اینور بوده نورش هم اونور بوده بعد یک ارتباطی بین خورشید و نور برقرار شده نه اصلا نور خورشید عین ارتباط به خورشیده این وابستگی با عین این تعلق به خورشیده اینو ابن سینا گفت فرمود معلولیت المعلول مقوم و وجود المعلول یعنی تمام هستی معلول رو همون معلولیتش تشکیل میده یعنی زا، زاتون ارزله المعلولیه نیست ببینید توپ زاتون ارزله المعلولیه بود؟ ذاتی بود معلول نبود شما پامش دادی دادیم افتاد شد معلول معلول پای شما حرکتش پس ذاتون عرض له المعلول ولی عالم که خدا می ایجاد بکنه نبود که یه ذاتی بود عرض الله نه ذاتون عین المعلولیه خب این تقریر رو ابن هم گفته حرف درستی هم هست آی مسباهم در کتابش داری دیگران دارد ملا صدر ها یه ادعا رو اضافه کرد گفت نه تنها معلول ذاتون عین المعلولیه بلکه معلول ذاتون عین الاله ببینید این, ال این دوتا تا شده ذاتن عین المعلولیه حرف حساب ابن سینا گفته حرف درستی هست ولی ذاتون عین الاله نه یه چیز دیگه ای شد این شد وحدت شخصی وجود خب برهان ملس صدر چیه برای این که از ذاتون عین المعلولیه پل زد به ذاتون این گفت معلول که در خارج از معلولیت قابل جدا شدن نیست چون طبق نظر ابن سینا معلول در خارج از معلولیت قابل انفکاک بله توپ از معلولیت قابل انفکاک ای توپی باشد اصلا کسی حرکتش نده ولی در علل ایجادی که میخواد علت معلول رو از نیستی به هستی بیاره دیگه ذاتی نبوده که عرض اللهل معلول ذاتون عین المعلولیه خب پس در خارج ذاتون عین المعلولیه مولا میگه ها نه تنها در خارج ذاتون عین المعلولیه بلکه در ذهن هم ذاتون عین است یعنی در ذهن هم شما نمیتوانید معلولیت را ذاتش رو از معلولیت جدا کنید پس نه تنها معلول در خارج ذات عین المعلولیه در ذهن هم ذات عین المعلولیه یعنی نمیتونید معلولیت ازش جدا کنید خب بگیم این چه در وقت شخصی وجود میخوره میگه ها. اگر معلول در ذهن ذات عین المعلولیه شد معلول عین علت باشه چرا چون اگر معلول وجودی غیر از علت داشته باشه پس میشه غیر از علت تصورش کرد اگه بشه غیر از علت تصورش کرد میشه غیر از معلولیت تصورش کرد در حالی که ما در مقدمه پنجم چی گفتیم؟ گفتیم که نه تنها در خارج ذاتیس عین معلولیت حتی در ذهن ذاتیست این معلولیت من تو کتاب نوشتم. نویشتم خواستید اون حکمت صدیم مراجعه اونجا توضیح کن پس ذاتون عین الالت اشکالی که به این فرمایش مله صدر وارد اینه که آقا جان صفا از صفات خدا بالاتر ما داریم صفات خدا در خارج عین وجود خدا هست یا نه ولی تو زن از هم جداش میکنی شما میگید الله و عالمون قادرون یعنی ذاتو موضوع قرار میدی صفات رو محمول و در زن از هم جدا میکنی چطور شما میگید در ذهن هم نمیشه معلولیت و از معلول جدا کرد ما کردیم و شد ما در ذهن میگیم که این ذات ذات حسن معلولن معلول لله یعنی داریم در ذهنمون ذات از معلولیت بله در خارج عین همان ولی در ذهن قابل انفکاه کرد پس اینکه در مقدمه پنجم فرمودید معلولیت رو در ذهن هم نمیشه از معلول جدا کرد این اول کلام خیلی از صفات خدا که بالاتر نیست ما صفات خدا رو از ذاتش در ذهن جدا میکنیم برای هم هم میکنیم پس این مطلب شما در مقدمه پنجم تمام نیست پس اونی که تمامه اینی که معلول ذاتون و المعلولیه در خارج اونی که نا اینه که میگه در ذهن هم قابل نه در قابل انفکاکه وقتی هم در ذهن قابل انفکاک باشه اون نتیجهی که شما برای وحدت شخصی وجود میگیرید تمام نیست لذا به نظر ما البته مرحوم علامه دلیل بر اثبات وجود خدا آورده آی جوادی اینا استفاده کنن که حتی میشه وحدت شخصی وجودم ازش استفاده کرد که من چون اصل برهانش رو نقد کردم دیگه یعنی اصل وجود خدا رو اثبات چه برسه وحدت شخصی من تا اون بازی یه بحث مفصلی داره حالا از دوستان یه وقتی هم خواستن ما در خدمتشون دانشگاه باقرالعلوم گروه فلسفه بنده شماره تلفنمو میدم هر وقت خواستید اینجا بحث میکنیم یک ساعت دو ساعت هر چقدر خواستید با هم که صحبت میکنیم و من ابعاد مسئله رو بیشتر میشکافم اینجا چون جلسه است خواستم خیلی وقت آقای رو نگیرم بل اخر این است که ذات ذات معلول عین معلولیت است در خارج حرف حق معلول عین ربط است در خارج حرف حق. ولی از اینا وحدت و شخصی وجود در نمیاد ذات معلول عین معلولیت از حتی در ذهن یعنی در ذهن نمیشه معلولیت رو جدا کرد نه ما جدا کردیم میشه از خدا که بالاتر نیست لذا که وحدت شخصی وجود نتیجه نمیده برهان علامه جای خودش ما اصلا این مقاله در نقدش مفصل نوشتیم که اون برهان مرحوم در تعلیقه اصفار که میخواد با از راه نفی سفسطه خدا رو اثبات کنه به وحدت شخصی اونم به نظر ما قابل مناقشه نکته ای که من در پایان عرض بکنم چون ما متاسفانه امروز ما یه جلسه دیگه بنابوده بیست و هشتم یعنی جمعه آینده ما داشته باشیم از ساعت 4 به بعد بعد این دفعه تو هفته ما اینجا رو دو هفته دو سه هفته پیش قول داده بودیم هفته قبل زنیدن آقا بیست و یکم گفتم آقا من بیست و یکم جلسه دارم من که نمیتونم بد قولی کنم گفتن باشه پس اونجا تموم شد من ما ماشین میاد دنبالتون بیاد. بای گفتن 5 باید، گفتن نه دیگه بذار یه رو به پنج، 5 دقیقه پنج بیایم که 5 دیگه رو اقل یک ساعت اولی جلسه نباشه ولی با بالاخره یه مقدار وقت ذیل شد ببخشید شرمنده یه نکته ای هم که من عرض میکنم ما یک نقد تفکر داریم یه نقد شخصیت اون دقت کنید به نظر من خیلی مهمه ببینید یه وقت میگه که میگه آقا ملا شخصی, شخصی هم و مثلا فلان محضوراتو داره و فلان اشکالاتو داره پس مولا صدرا مثلا خدایی نکرده فتحون عذیتی شخصیتی از ربقه اسلام و دین و اینا خارجه نه ببینید خوب دقت بکنید ما یک اصل کلی تو فلسفه داریم تو اصولم داریم تو فقه هم داریم تو کلام هم داریم که آقا اگر کسی دلیل عقلی قطعی بر یک امری داشت حالا یا عقلی یا نقلی، یا عقلی یا نقلی هر دو بر یک امری، مثلا خدا جسمانی نیست دست از ظهور یدالله برمیداره قبوله، همه قبول دارن اینو که وقتی خدا جسمانی دیگه یدالله معنای دست معمولی نیست یعنی قدرت خدا یا جا, و بله، جا, عر... جا عرب بکن، ولی ملک و, و صفان صفا مثلا خب اون دست ملکه خدا در صف ملائکه نیست چون اصلا صف قرار نمیگیره خدای متعال مل و صدر را دو تا محضور داشته یعنی به تعبیر دیگر دلیل عقلی به حساب خودش داشته بر مدعیات خودش حالا به هم وحدتی وجود هم معاد جسمانی اینها مثلا درباب معاد جسمانی من میگم شاید روشندتر باشه خب میدونید که معاد جسمانی مل و صدر را قیل از م... به نظر یه یه یعنی که میگن همونه ولی به نظر من و یه غیر از معادی جسمانی ظاهر آیات و روایات ظاهر آیات و نگاه به بدن برمیگرده یا خود بدن یا بدن مثلی بدن ولی, ولی ملا صدر میخواد بگه مثلا این بدن بر نه خودش نه مثلش چی برمیگرده شما در طول دوران زندگی نفست یه بدن مثالی میسازه و اون بدن مثالی برمیگرده رو دقیقا مثلا ما نیاز به این بدن نداریم نظرم بنظرم قضیه حضرت ابراهیم حضرت اودی نمیشه ولی حالا چرا مولا صدرا را با اینکه ظاهر قرآن رو خلاف نظرش بده معتقد شده از باب بی دینی مثلا ایمان به قرآن نه نه نه نه, نه. ایشون دو تا عقلی داشته به حساب خودش یکی اینکه تناسخ مطلقا محال است یعنی روح به بدن قبلی خودش برگرده مطلقا محاله ماده عنصری دنیا با ماده قیامت هم تواین صد درصد قائل بوده که او دو تا محضور عقلی باعث شده دست از ظاهر آیات و روایات برداره از باب بیدینی نبوده به یه قاعده کلی که همه عمل میکنن عمل کرده اشکال ما به کجایی کاره به کبراش نیست؟ به سقراست یعنی عدله امتناع تناسخ به طور مطلق رو ما همه رو مناقشه کردیم انصره یعنی ماده دنیا با ماده آخر ما توایون صد, صد نه نقلا نه عقلا نقلن نمیدانیم بله تفاوت دارند دارن ولی تواین 100 درصد رضا ما که ادله رو مناقشه کردیم ما دیگه ضرورتی نداره دست از آیات و روایات برداریم ایشون چون این یقین براش حاصل شده یقین هم حجات دست برداشته خب روز قیامت هم بالاخره خدایا من دلیل عقلی قطعی داشتم معذوره بس همین فقه های ما دیگه شما همه فتاوایی که مراجع تعلیم خیلی بالاخره ممکن اختلاف باشه یکیش درست، یکیش قلته. برای روز قیامت معذورند. چرا معذورند؟ با ادله و حجج و اماراتون را بالاخره یقین براش اونجوری حاصل شده. یا زن حجت مثلا براش اینجوری حاصل شده. در به نظر من فلاسفه و عرفایی که به انهار یکی کسی از ما نمیشناسیم. ولی کسانی که میشناسیم انسانهای وارستهی بودن انسانهای پریسکاری بودن اهل نماز شب بودن اهل زیارت مکه و مدینه و عتبات و اینها بودن کرارن این حالا اگر قائل به وحدت شخصی وجود یا به معاد است، از باب بیدینیش نیست رمی به بیدینی و کفر و الهاد نشه نه لذا میخوام بگم این بحثای نظری بدانیم آقا اختلاف نظری بین وقتی یه هم از بینیم بزرگانه به از بینیم بچه طلبه ها باشه که بگیم آقا اینا بیخود وقتی بزرگان در یک همچه اموری اختلاف دارن اینو با حساب دینداری یا بیدینی نگذاریم اختلاف نظره نقد علمی کنیم احسن ولی برچسب شخصیتی نزنیم آقای این خوب خب مخالف وحدت شخصی وجود بود ولی یک جمله خیلی زیبایی داشت در یک جلسه من نبودم و آقای فیاضی بود اینا گفته بود ببینید وقتی بزرگانی مثل علامه مثل حضرت امام بینیم که در کلماتشون ظاهراً وحدت شخصی وجود رو پذیرفتن حالا بعضی از تقریراتش از اون طرف میدونیم دوستان انسان‌های متدین، متخلق، اهل سیر و سلوک، معتقد 100 صد درصد به اهل بیت به کلمات اهل بیت به قرآن میگیم شاقوب دقت انصاف علمی رو ببینه وحدت شخصی وجود رو قبول نداره ولی میگی شاید یا چه بسا اینا یک حقایقی رو کشف و شهود کردن و به یک حقایقی دسترسی پیدا کردن که ماها از اون حقایق خبر نداریم مون تا تعابیرشون نتونست اون حقایق رو محالی کنه یا باال بوده که ما فهممون قاصر بوده یا حقایق خیلی بلند بوده ما اونی که نقد میکنیم چیو نقد میکنیم؟ اونی که واقعا شاید بش رسیدن و اندالله هم درسته و ما خبرن اونو ما نقد نمیکنیم. ما ظاهر کلماتشون تو کتابشون نقد میکنیم. ما اونی که از وحدت وجود تو کتابشون میفهمیم با عد که دارد این رو نقد میکنیم اما به یک حقایقی رسیدن که ما نرسیم بعید نیست این انصاف علمی ها یعنی شخصیت زیر سوال نمیره سرجاش محفوظه. با تمام عظمتش ولی عظمت شخصیت ما رو وادار به عدم نقده نمیکنه کنه باقا لدایم اسوا میگه اینی که تو عبارات عرفاز ایشون میگه اصلا با بداهت مخالفت داره اشون میگه هیول البتلانه که آقا بگیم یه وجود بیشتر نیست بقیه مثلا مجس موج دریان ایشون میگه به نظر ما بدهی البتلانه اما چه بسا این بزرگان حداقل اونایشیونه که ما بهشون ایمان داریم و متقی و پاک میدونیمشون به یک حقایقی نائل شده اند که در بیاناتشون نتونستن اون رو ترقیق بکنند و حالی ما بکنن ما اون نقد نمیکنیم. اون چه بسا حقایقی است خدا هم قبول داره روز قیامت هم ازش دفاع بکنن ما چیو نقد میکنیم؟ نوشته ها رو اونو که از عبارات فهمیده میشه نیزا کاری به شخصیت ما نداریم به گفته و قول و مدعا کار داریم این هم عرض نهایی بنده الان هستم در خدمت عزیزان که اگر سوالی اشکال ایرادی هست در خدمت شما عزیزان میشه محمد فرمود جناب استاد معلمی عزیز اما خوب یک سری سوالاتی مطرح کردن حالا آرام آرام عرض میکنم خدمتتون تا بتونیم به نتایج محتوی برسیم بسیار بسیار عالی بود استفاده کردیم سوال اول اینه که آیا نظریه یه وحدت شخصی وجود به جب گرایی می انجامد؟ بله بله. بله بله من معتقدم می انجامد <تصفح> البته خود عرفا دفاع کردن ها حضرت امام از راه شاکله وارد شده بعد دیگه ولی به نظر من بیاناتی که او منو قانع نکرده شاید قصور فهم من باشه ها شاید قصور فهم من ولی من معتقدم وحدت شخصی وجود جبر به دنبالشم چون وقتی شما به این وجود خدا موجود بودی مثل موج دریا این شما کاره نیست همش خداست لذا بعضی از اساتید ارفان در دفاع از عرفا یه چیزی گفتن که بدتر خرابش کردن بیان نه اختیار تو از بین میره ولی اختیار خدا جاش میاد میگو خدا خیرت بده پس من دیگه بیکارم دیگه بیکاره نیستم پس دیگه شما همه بدی های منم به خدا نسبت بده. در حالی که در قرآن داریم میگه بدیه از خودتون خوبی از طرف خداست و اصلا این ای ناهده ای ناهستبیل اما و اما ای این همه آیات راجب اختیار و هدایت و بله شما اگه جب... وقت جبر نتیجه چیه جبر نکستن کل ارسال انبیا و رسول هاینا همه لذاب عرف ها ج... جبرگیرا نیست در نه ما هم اختیار قائلیم ما مخواهم بگیم ولو در عقیده قائل به اختیارید ولی اعتقادی رو که به نظر ما منجره جبر میشه میگم از کردم من نظرم اینه که به جبر البته عرفا فلاسفه فلاسفه که کسل گران عرفا یک, دارن یک توضیحاتی دارن یک توضیحاتی دادن از باب تعینات و هر تعین یک وصفی داره اینها که حالا من نمیمینم توضیح بدم یا نه ببینید در دفاع از فلاس عرفا شاید کسی اینجوری بگه چون حالا خودشون نیستن خداشون که هست بگن آقا الان یه استیل استوانه ای رو با یه استیل تیز فرقشون چیه؟ استیل تیز میبره چاقوی استیل تیز ولی استیل استوانه پس ببین در حالی که تیز بودن وجودی زائد بر, بر استیل نداره تازه برعکت بعد این تا تیز بشه پس تیز بودن وجودی زائد بر استیل ندارد، ولی کار ازش میاد میبره خب ما هم به این وجود خدا موجود باشیم ولی یه کار از میاد همون اختیار پس تعینات وجودی میتونه توجیهگر اختیار باشه هر تعیونی یه اثری برای خودش داره درسته ما به این وجود خدا موجودیم مثل اون تیزی که به این وجود استیل موجوده ولی برای خودش یک گروبیایی داره جواب ما اینه که آثار تکوینی درست قبول تعینات آثار تکوینیشون جای شک نداره ما آثار اختیاری رو کار داریم شما وقتی به عین وجود خدا موجود بودی و وجودی زائد بر وجود حق نداشتی اصلا دیگه نمیتونی در مقابل حق کاری بکنی خلاف حق بله کارات همه به وفاق حق میتونه باشه ولی به خلاف حق در حالی که ما خیلی از گناهان معصیت ها اینها همه وقتی میدونید این نتیجه اون وقت این میشه که بعضی از مثلا میگم انهرافات میگن آقا شیطان موحد بوده چون به غیر امر خدا کار نمیکرده خب بیه خیلی کنی نتیجه بدی شیطان موحد بوده به چه حال مبهد بهش بله شاید میگه خدا رو یکی میدونسته بله ولی توحید در واقع پرستش و اطاعت از امر الهی نداشته که اسیان کرد خدا رو یعنی و کانم نل کافرین اون روز هم کافر نشد، اون زمانی که نکت کافر نشد معلوم از اول این کفره رو خودبینی و تمرد در مقابل قول حق رو منیت بوده درش به هر صورت مخوام عرض بکنم که بله ما اینو قبول دم بسیار رسیار عالی اگر سوالی دارین حتما مکتوب بفرمین حتما مکتوب بفرمین چون زمان آجاقا هم کمه بفرمایید بفرمایید فرمایید که اگر ما دلیل قطعی حتمی داشته واشید از ظاهر محسوس یا ظاهر محسوس رو تبییر می کنیم درست درست درست درموز این آیات فروایات که ما از ظاهرشون بسبر می داریم خب بازی عدله نقلیه دیگه خود این عدله رو رد می کنه مثلا عدله ی روایی قطعی یا قرآنی گفته که مثلا خدا جسم نیست بعد ما اونجایی که میفرمایید يد الله فوق ايديم رو دست بر می داریم خب اگر ما ادله قطعی قرآنی و روایی داریم خب حالا بر حدوث عالم بر خیلی چیزها دلیل قطعی یقینی با این میخواد چیکار بکنه بله اگه قطعه اونم مدعی قطعی نیست من خودم قا... قائلم که عالم حادثه قدم عالم رو قبول ندارم ولی اونا برای خودشون یه شواهد نقلی میارن اون بعد بحث بشه میبینید اینکه الان ببریم بدوزیم که قطعیه این یه مقدار حالا ما در مثال نمیخوایم تازه،, تازه تازه شما رفتید ادله نقلی رو دیدید یقین پیدا کردید عالم حادثه برای شما حجت اینه ولی اگر اون رفته و برای خودش یقین حاصل شده که عالم حادث نیست قدیمه از همون روایات شما چی میگی؟ نه. نمیتونی که خفتش کنی الان من حت... در مورد مزاق نمیخوام وارد بشم به صورت یک قضیه کلی فرض کنید یه شخص میگه ما دلیل قطعی عقلی داریم, عقلی داریم. با... و دلیل قطعی قرآنی و روای با... این دوتار اون... اون... که اون... شیخ همساری اون... در رسائل میاره این دوتار بله اگر... ببینید ما چار وجه داره فرمای شما با... متین دلیل عقلی یه وقت قطعیست. یه وقتم دلیل نقلی قطعی است و مخالف هم این یه وجه یه وقت دلیل عقلی قطعی است دلیل نقلی زنی. اینم وجه دوم یه وقت بالعکس دلیل عقلی زنیست است. دلیل نقلی قطعی یه وقت هر دو ظنی چکنیم؟ چه کنیم شاید حرف خوبی داره میگه ما قطعی زدی هم رو نداریم تو قرآن که عقل قطعی یه چیزی بگه نقل قطعی هم یه چیزی بگه معمولا محل نزاع و زنیه حالا ابن سینا که ما این همه باشیم بنده خدا یه جایی فکر کرد ما دلیل عقلی بر ضد دلیل نقلی داریم کجا این احساس کرد؟ تو معاد جسمانی فکر کرد معاد جسمانی قرآن دلیل قطعی عق... است قطعی است قطعیست. ولی ما دلیل عقلی قطعی بر علیش داریم ولی گفت باز قول کی من مقدم میکنم؟ صادق مصدق رو چرا؟ دلیلش هم اقلی عقل کل و عقل جزمی عقل کل بر عقل جزمی مقدم ولی شهید مطهری میو اصلا نداریم، مستاق نداره ولی حالا اگر کسی همچین چیزی براش پیدا شد، اون روی حل و इलाज داره دیگه بعد میبینه واقعا کدوم ولی اگر عقلی قطعی بود نقلی زنی خب قطعا عقلی قطعی مقدمه دیگه یا بلعکس بود نقلی قطعی مقدمه زنی بود اگه جزء عمل بود بعد عمل می‌کردیم باید. اون به شرعیش عمل میکرد اما اگر نه پجوهشی بود بعد به پجوهشمون ادامه بدیم خیلی روشنی بسیار عالی یعنی نزا است یعنی شما اگر بگید آقا دلیل قطعی نقلی داریم بر حدوث عالم ایب نداره شما دیگه از دستت از حدوث بر نداره قطعا تا آخر عمر ولی این که اونم قطعی بود دست برداشتن اینجوری نیست حد اقل متدینینشون زنی میدانست سوال دوم رو کوتاه حرض میکنم فرمودید که ما رأی رع و دیدگاه رو نقد بکنیم درسته؟ درسته بله کاری بله. یعنی به باید... شخص احسان ولی ببینید اجازه پرمایید الان در جامعه ما از بعضی از شخصیت ها ببخشید شاید توی تعبیر بند مسامح هست یک بوتی درست کردن الان تعبیر که اگر شما نقدی وارد بکنید به علامه تواتوایی یا به فلسفه در آثار بعضی از فیلسوفان منده خوندم تعبیر میکنه که هر کسی فلسفه رو قبول ندارد چون خر است چون خر عقل ندارد یعنی نقد فلسفه الان در دانشگاه در حوزه ما به معنای ذدیت با عقل نقد فلسفه یا مسائل فلسفه چون نقد فلسفه نقد عقل خب کسی عقل رو نقد کنه که اون توصیف رو داره نه این تصاویر ما از کجا کسی یعنی مسائل عقل و عقل یعنی فلسفه این رو ما از کجا آورد نه فلسفه خوب دقت کنید عقل مساوی با فلسفه مله نیست درست عقل مساوی با فلسفه ابن سینا نیست ولی خیلی از حرفای ابن سینا و دلیل عقلی برش میتونید ردشون شما بعد میتونی ردش کنی بنده خدا میتونی هم میگه آقا عقلم جایی با فلسفه نیست پس بذار نه باید دلیل ببینید انصاف علمی تونستی رد نه عقلی بکنی نتونستی تونستی قبول کن چون در مقابل عقل قطعی نمیشه انسان بی تفاوت بشه بگه آقا من دیگه قبول ندارم یا واقعش مثلا میگه آقا عقل قطعی میگه ولی نقل قطعی چیه دیگه میگه خب فکر کنه شاید اون مقدمات دلیل عقلیش مخدوشه سپاس بسیار سپس گذارم یعنی درسته فرمودند که, که اصخایه می کنم متن واضح شد فرمودند که با توجه به اینکه فلسفه با ادعای عقل قطعی میاد جلو و شایی پور عقل به دست می گیره درسته،, درسته و مخالف خودش رو مخالف عقل می اما به جایی می رسد که میگوید که هادا تاورون و را تاورالعقل برسته بری کشف شهود بکنی. این چارچوب عقل به هم میخوره آره اینجا یک سانی بر مطلب اینجا میگه با کشف و شهود میتوانن چیزهایی مکاشفه یا شهود کردن که ما شهود نکردیم اینجا سوال کردن آیا با کشف و شهود میتوان اعتقادات بنا کرد یا باید با مسلمات از عقل و ثقلین باشه احسن. یک دو اساسا حجیت کشف و شهود چه مقداره کشف و شهود جایی است که جولانگاه شیطانه و نمی توانیم قسم حضرت اول فض بخواییم که این شهود یک به شیطانی بوده است یا رحمانی <تصفيق> چگونه می توان جایی که مرد شیطان است ما به توانیم اونجا حسن اعتقادات بنا کنیم و محضور باشیم خود عرفا در تمهید القواعد داره ابن ترکه میگه ما کشف و شهود ما گای الهام الهیست گاهی از القاعات شیطانیست بعد میگه چکارش کنیم میگه ارزش کن به نقل قطعی و اقل قطعی بس خواهی میکنم اتفاق اینجا فهمنن که اگر اینطور باشه پس حجیت و کشف شهود سفر فرانس فقط سقاله میماند ارز من جنو تمام نشدی. ببینید پس خودشون هم گفتن ارزه کنید داره ارزه میکنن یا نه بحث دیگریز داره کبراج رو گفتن داره سهراش کشف و شهود برای صاحب کشف برای غیر صاحب کش حجت نیست یعنی اگر یک عارف اومد من در عرفان نمی‌خوام میگه برای خودت حجت برای من حجت من دلیل عقلی و نقلی داری من قبول اینا من برام حجت نیست نمیکنم ولی قبولش هم اگه ضد عقل قطعی و نقل قطعی باشه ردش میکنم ولی شکم اما اگر نه یک مکاشفه کرده نه دلیل عقلی بر ردش دارم نه دلیل نقلی بر ردش دارم ولی بازم برام حجت نیست نگریین که من اینقدر به اون شخص مکاشف یقین داشته باشم که برام یقین حاصل بشه مثلا در باب حالا من یه مثال بزنم در بهبوهی انقلاب نمیم کنم وارد سیاست نشم میخوام یه نقل قولی از باب همین کشف و اینها بگم یه وقت خب میدونی که نیرو هوایی اولین گروهی بودن که اومدن با امام بیعت کردن که, که سنشون هم سن منه اینو یادشون هم. خب شاه هم بیشترین سرمایه‌گذاریش برام هوایش کرده بود خیلی براش سخت بود که اون نیرویی که از همه بیشتر رو کشیده اولین گروهی ان که بر پشتش کردم و به امام پیوست. رضای وقت خلاصه تصمیمایی گرفت. آمد یک روز زور اعلام حکومت نظامی کرد. فکر کنم ساعت 12 اینا اعلام حکومت نظامی خب حکومت نظامی وقتی اعلام میکنن یعنی هر کی از خونه بیاد بیرون با تیر میتونن هیچ جالب اینه که امام گفت همه بریزید بیرون با اینکه امام وقتی حکومت دادن میگفت مردم مراقب باشن فلان همه بریزید بیرون اصلا اعتنا حکومت آقا تمام و براش افتادن که آید امام قربونت برم قتل عام میشه گشتار میشه اون همه بریزید بیرون آیت الله میگن خیلی پاپی شده بود حالا میگم این طبق نقلی که من شنیدم حالا ان که درسته که بالاخره فلان فلان فلان خیلی با امام بحث کرد. امام گفت امام, گفت امام گفته باشه شما چی میگی چون دیگه هیچ میگه هیچ میگه چیزی دارم ندارم بگم که بعد حالا جالب مردم ریختن بیرون بعد معلوم شد قصد این بود که نیرو هوایی رو ترور کنن یعنی کلان از طرف خودشها کل بچه های هوایی رو از دم تیر یعنی حمله کنن به اون مقرشون خب ببینید چون آقای طالقانی و علمایی که دورور امام بودن به امام یقین داشتن که اگه میگه آقا امام زمان اگر گفته برایشون یقین حاصل میشه اما آیا واقعا هر عارفی برای ما یقین حاصل میشه نه مثلا فرمایشات محی نه به نظر من یقین که حاصل نمیشه اتفاقا با اینکه گفته من کتاب فسوس و از دست پیامبر اکرم گرفتم ولی خب چون تناقضات خیلی روشنی توش وجود داره محاله که لذا ببینید کشف و شهود عارف اونجایی که از الغاء یعنی براش محرز بشه از الغاءات برای خودش حجته ولی ما حجت نیست باید یا با دلیل عقلی یا با دلیل نقلی بگه پس اه... ولی زیرابش هم نمیزنیم بله اگه ضد اقل قطعی ضد نقل قطعی باشه اصلا باطله اما اگر نه, نه نقل قطعی رو بر خلافش نه عقل قطعی رو بازم برام حجت نیست یعنی بازم ما میتونیم قبول نکنیم رد نکنیم ولی قبول هم نکنیم. نه من دلیل عقلی داری دلیل نقلی داری مخلصم ولی من همینجوری ردت نمیکنم فذر حفی بقعت الامکان بقول ولی از کشف و شهود حجیت عام ندارد آره. خیلی مستشکرم آجا سوال بعدی که من کردن که آیا آیات و روایات با نظر وحدت شخصی سازگار است یا صرفا با تعویل آیات و روایات میتوان آن را به دین نسبت این یه بحث جدایی میخواد ببینید بعضی از بزرگان حالا من نام نمیبرم چون میگه هوه ظاهر و الباطن یعنی وحدت شخصی وجود. او این هوه هم ظاهر هم باته دیگه جایی برای کسی نداشته من کاری ندارم این توصیف درسته ای نه ولی اونم برای خودشون شواهدی دارن پس بعد یه بحث جدایی بشه من باشم میگم ما باشیم و آیات و روایات به دلیل اینکه ادله وحدت وجود تمام نیست و مخالفه با اختیاره یا آیات و روایات غیرشو میگن یا اگرم یه آیه‌ی ظهور در وحدت شخصی و دست از ظهورش بن باشم اینو میگم آه. ولی در یک بحث علمی جدی تری بعد واقعا مشت... آی فریده و توی جزوهی تمام مستندات آیا وروایشون آورده بود بر وقته بیاریم این بیاریم, بیاریم ببینیم واقعا چه باید گفت آیا واقعا از آیات رو واید به طور قطع وحدت شخصی وجود باطل میشه یا به طور زنی باطل میشه اون بحثش جای خودش جدا ولی من باشم چی میگم؟ میگم آقا چون عدلتون قابل مناقشه است یک و مستلزم جبر دو و آیات روایات قطعاً با جبر مخالفاً سه به نظر من مخالفه با آیات روایات ولی این دید منه ممکنه کسی شواهد دیگه بره توجیهات بکنه خیلی عالی حضرت ایبلان پس اکنون سوال بعدی پرسیدن که آیا فلاسفه و شخص حضرت جناب معلمی وحدت شخصی را میپذیریت؟ نه من که قبول ندارم وحدت چون عدلش نتمامه مستلزم جبره به نظر من <تصفيق> و سآله من تا خب من قبول ندارم ببینید ممکنه یه کسی که قبول ندارم بگه تو قبول نداری مگه تو ملاک حق و باطل میگه نو مخلص شما بسیم <تصفيق> <تصفيق> خدا حفظتون کنه سوال بعدی این که مهمترین نقدی که می توان به وقتت شخصی وارد کرد چیست؟ همین بحث استلزام جبره دیگه به نظر ناتمام بین عدله اگه فقط ادله ناتمام بود ممکنه کسی بگه اقا ناتمام بودن ادله دلیل بر ناتمام بودن مدعا نیست ولی من معتقدم علاوه بر این که ناتمامه مستلزم یک محالم هست و هو الجبر چون میگن معارض ببینید دلیلی که شما میدید یه وقت دلیل نتمامه خب مدعا اثبات نمیشه ولی نفی هم نمیشه ولی یه وقت دلیل معارض میارید در مقابل دلیل اون یه دلیلی بر علیهش میارید اون مدعا رو باطل میکنه نوشتن که آیا وجود, وجود تشکیکی احانت به ساحت قدس الهی نیست نه ما در... خب بفرمون بفرمون می که ما در مقابل خدا می بگوییم او هزار است ما مثلا ده او که امام معصوم نیست در مقابل عالم یا امام معصوم بگوییم که او هزار است ما یک در مقابل خدا باید گفت اگر او وجود است ما معدومیم صفر و عدمی. ها صفر و عدم واقعی هم به وحدت شخصی وجود میشه. نه ما میل به صفر داریم می خدا یا ما وجود, به ما وجود خدا داده یا نداده ما رو آفریده یا نه اگر بگیم ما رو نیافرید ما جلوهای خودشیم همون حرف عرفا و وقت شخصی وجود میشه بگیم صفریم همون به اونجا برمیگرده پس باید یک درجه از وجود رو برای خودمون قاعد باشیم منتها یه وقت درجه یکی با هزار با ده هزار این نه یه وقت درجه یکی با بینهایت قابل قیاس نیست عرض کردم تو ریاضی میگن عدد صحیح ولو هزار ولو ده هزار ولو میلیارد روی بینهایت میل به صفر داره لذا از این جد مگران نباشید اون لئیس که مثلی شعی سر جاش محبوط تشکیک سنخی مشکلی ایجاد نیمیکنه بفرماید قرم یه سوالی که دارتمایی که شما نظر نهایی ملا صدرا رو تشکیک سریانی میدونید یعنی ملا را از تشکیک سنخی عبور کرده و وحدت شخصیه رو به وحدت سریانی شما معنا می کنید. یعنی مراتب مراتب بره. وجود موجود واحد درسته. یعنی همیدونه. یه فعل از باری تعالی، حالا دو تا بازم اینجا تفسیره. یه تفسیر آقلی مدرس زنوزیه که اون وحدت سریانی و فعل باری تعالی می و خود ذات خداوند رو خارج از این واحد شخصی معنا کنه این معنی... به حق نزدیک‌تره. خب. بله. یه, یه معنای دیگه ای که شما فرمودید یعنی خداوند سرسلسله است. احسن. احسن. و ما ولی بله یه وجود داره. واحده. یه وجود احسن. واحده که خداوند سر... حالا این اشکالات زیادی داره از این موضوع. اما سؤالی که اینجا هست اینه که آیا این طبیعین شما با اون نظر نهایی صدرایی توی جلد 2 اسوار که توی فصل 25 مطرح میکنه با تحلیل علیت رسه به شأن و زیشان؟ یعنی <تص> خودش تصریح میکنه که ما سوا به حیثیت تغییری شعنی مورد در خب اگر ما اینو بپذیریم در زیل نظر نهایی صدرال درسته. لازمش اینه که رابطه حق و خلق رابطه دوتا امر حقیقی و به نباشه درسته، درسته. در حال که لازمه نظر درسته. شما اینه که درسته. رابطه حق و خلق رابطه دوتا امر به و حقیقی باشه حالا قامل. نظر نهایی صدرال شما کدوم میدونید؟ سریانی میدونید؟ درست چون آقای اینجا اقواز مفتده؟ گرفتم مستدفه. نکتر رو، گرفتم، ببینید ما باشیم و عبارات ملاسد را متفاوته واقعا بعد جا میل به حرف عرفا پیدا کرده، بعد همین عرضه بنده تا من معتقدم ملا صدرا میخواسته این سرایانیه رو درست کنه، یعنی مراتب وجود واحد تا کسرت، تا غیر خدا رو یه مقدار کثرتشون رو قلیستر کنه که فیلسوفان و متدینین بیشتر بپذیرن ولی تو جلد دو عملا منجر شده و همون بسات علیت جمع شده و به شأن و وزشام برگشت لذا مثلا امسال آوای یزدان پناه میگن نه مولا صدر رفته به همون حرف عرفا یکی مثل آسد مصطفی میگه نه با دو تا قول مختلف اصلا یکی نیست لذا عبارات مولا صدر کشش هر دو رو داره آره سوال کاملا نکته سوال خیلی خوبی بود البته همه <تصحیح> سو سوال خوب بود میگم نفع ما ادا نمی بسیار سخوز سوال فهموندن که در کدام اثر حضرت عالی میتوان بحث و عهدت شخصی رو دنبال میکنه؟ یکی عرفان نظری یکی تمهید القواعد، شرح تمهید القواعد، عرفان استدلالی شرح تمهید قواعد قواعد و توحید، مال ابن ترکه و شارهش که نوشه و یکی حکمت صدرایی حکمت متعالیه که عکس شد دید و یکی هم حکمت صدرایی پنج جلد شرح شواهد الرویه است اونجا ما تو شوا، شرح شواهد حدوث عالم رو گفتیم که همون حدوث عالم درسته معاد قرآن رو ترجیح دادیم نه معاد ملصدا صدا و وحد شخصی هم نقد کردیم یعنی ببینید بنده معتقدم باب نقد ببینید عرض من اینا باب نقد و نقادی منصفانه مستند با احترام، با ادب، با حفظ شخصیت عرفا و باید در فلسفه و ارفان باز باشه در هر علمی باید باشه و ما از نقد نه علممون برمیشه. میشه عرض بنده ازتایی میکنم بسیار آلیا جا ما امروز کمید دلمون قرصتر شد با فرمانشات هزت آلی من همیشه من در داخل کلاس‌ها و تو جلسات علمی عرض میکنم به دوستان که سه نکته خیلی مهمه حریت علمیت ادب با این سه نکته میتوان هر غیر معصومی رو در بوت نامبررسی کرد هر قران و معصوم قابل نقدی تمام حریت باشه که ماش به قول آقا شخصیت پرست به قول آقا عزیز دلمون شخصیت پرستی نباشیم بود پرستی مدیر مقدد... که مثل که عقاب میبرد مقدسش نکنیم بله اما که نیست قول خودش مثل اون حضرت گفت تو که لعانه ها داره حضرت فرمون آ، آ، آ، کلام از خودت یا وحیه؟ گفت هم کدام هم وحکا ها رجلون قد خسر به نفسه قبل این یتکلب حریت باشه و اما با علمیت با و عدد, عدد. عدد احسن این ستا احسن. فکر میکنم غیرمعصوم رو بله بله بله بله. بشه نقد کاملا درست من اینو صد درصد باشم خدا حفظتون کنه فرمودن که مهمترین اشکالتان محضور اختیار انسان است آیا اختیار مقر، مفر از حکومت او تعالاست من سوادم یه ذر زعیفه آقا یا خط بعضی خط هم میخیه مثل خط من من گاهی خط خود من نمیتونم بخونم میتونم از بست تن می بله آیا اختیار اگر خ... عزیز هستم خودشون بفرمان من سوادم زعیفه از خاید. بله حالا اون یه بحث دیگه است که اصلا ببینید در قرآن از یه طرف میگیم هر چی شما اراده میکنید خدا انجام میده از یه طرف داریم نه هده نه فلان جمع بین اراده ما و اراده خدا یک از معضلات فلسفی و آیات روایات یعنی یه چیزیه که مثلا آی خویی با یه مثال سعی کردین رو حل کنه که هم اراده خدا آم باشه قید نخوره هم ما اختیار جاش باشه چون این سوال شما دیگه ربطی به آرف و پاسخ به سوال شما رو آی خویی رزوان الله تعالی می میفرماید فرض کنید یه کسی ماشین سواره این ماشین موتور نداره ولی چرخ داره فرمون داره یکی هم هول میده حالا این که داره هول میده این بنده خدا که فرمون دستهشه به سمت دره بره یا به سمت جاده بره اگر به سمت دره رفت اون هول دهنده مقصدی این بنده خدا اون نقدش ه... اون انداختش دره یا این بنده خدا میگه هر طور انداختنش دره ولی کیو یقهشو میگیرم اونی که فرمون داده میگن ما مثل فرمون بدهیم ولی قدرت مال خداست مثلا منتبا بادم این مثال ها حق یعنی من اگر امام زمان علیه السلام خدمتشون برسم بیان تشییل بیارن و توفیق پیدا کنیم یکی سوال ازشون می... از ایشون دارم یکی بحث جبر و اختیار و اینکه اراده خدا با اراده ما چیلی جمع میشه باقا یک سوالی جدیه یکی بعت ضرورت اللی و اختیار چجوری قابل جمعه؟ خب اصولی این آقای خویی، آقای صد مخالف ضرورت اللی هستند فلاسفه کلن موافقن هستند، آقای فیازی من معتقدم هر دو بدیهی هستند، ولی موندم چجوری جمعش کنید؟ آقا امام زمانگه می کنیم، اگر که امام بزرگ دستو دست و های شما رو می بوسمید، اینو جواب بدید به واقعا لذا ما خیلی هم راجب حدوس و قدم عالم. آقای، مسوا میفرمایان نه ادله حدوث تمام نه ادله قدم ولی هیچ قولی انتخاب نمی کنه فلاسفه میگن قدیم متکلم میگن حدوث منم معتقدم واقعا من من معتقدم چون ادله تسلسل استحاله تسلسل دلیل خوب دقت بکنید دلیل فارابی دلیل احسد و اخسر فرابی تناسخ چی تسلسل در علل معد شامل شابل میشه پس تسلسل در علل معدم محال پس قدم عالم مثلا محاله من خودم نظرم اینه یه وقتم باقای فیضی گفتم قبول کرد لذا از من اگر میپرسید میگم مثلا قدم عالم محال هم حدوثی که رواجات ظاهرشون هست درسته ولی خب اونم هم برای خود یک عدلی دارم میخوام آره بگم اینه این بحثی که شدید اص مهم می است واقعا. چه خوبه من یالو نکته عرض بکنم الان آخرین کلام. ببینید ممکنه ما من سر کلاس من میگم ممکنه یکی بگه آ من نفهمیدم بالاخره اراده من با اراده خدا چجوری جمع میشه؟ آیا این مجویدی داره جبری بشه نه؟ چرا چون آ استسلامی گرویان استسلام میگن خدا هر که تو قبول داریم مقبول داریم. جبر اختیار هر هر که تو هر که اهل بیت فرمودن تو حقیقتشم هم چیه ولی احتیاطاً به وظایف شرعیم عمل میکنم که اگر روز قیامت برام ثابت شد که مختار بودم چیزی کم نداشته باشم این واقعا حرف است. هر جا تو مسائل قضا و قدر و جبر و اختیار گیری کردید حل نشد بگید خدای هر چی که تو میگی و تو قبول داری و من نمیدونم همونو قبول دارم. اهل بیتر چی لا جبر و لا بل امر بین همون حق محض ولی من نمیفهمم ولی من احتیاطاً به تمام مسائل شرعیم حراما حراما رو تگ میکنم واجباتو انجام میدم احتیاط میکنم که اگه روز قیامت انبرم روشن شد چیزی رو از دست نداده باشم <تصفيق> به این راه نجات بسیار بزرگیست برای اینکه انسان یه وقت بحث جبر و اختیار و مشکلاتشو بهانه نکنه برای جبرگرایی چون یه فیلم دیگه نشون بود تلویزیون سارق کتابای عالمو دزدیده بودن این عالم بزرگواری این قاهمارش کتاباشو دزدیده بود عالم میگه با کتابم بده گوید تو عالم میگه بله گوخ من یه سوالی دارم اگه خدا ارادش تامه پس ما چی کنیم و چون ما مجبوریم منو مخاطب ها گفت تو چرا سرقت میکنیم، گفت من برای اینکه چه سرقت بکنم چون نکنم دست من که نیست خداست بعد اینو مطرح کرد حالا عالم جوابش داد ولی آیا واقعا ما می توانیم گناه بکنیم به بهونه اینکه امر برامون حل نشده یا نه؟ احتیاط کن. احتیاط که آدمونه کشه. روز قیامت اگر حرف مؤمنین و مخت... اهل اخ... اختیار درست در اومد، لقد زرر نکرده باشی. اگر حبر... حرف جبر در اومد تو زرر دوند، برخواه واجبات محارتوان انجام دادی. اما اگر یه وقت حرف اونا درست در اومد و تو خاطر بهونه جبر دست گناه و معصیت زدگی و دست از واجبات کشیدی وا چی می‌خوای اون روز قیامت که دیگه جایی هم نیست؟ رضا احتیار خیلی عالی بود ازا من نماز مغرب رو حتما حتماً میخونم می‌خونم <تصفيق> <تص <في okay تصفيق> <تصفيق> خوب بود نتیجه خوبی بود <تصفيق> به این نتیجه رسیدم باعث واجبات رو احتیاطاً انجام بده شما نمی‌گیم مخاطب ما کسانی که جبر و اختیار رو به پیچیدگیش تو بهونه برای فرار از ویده شما که بزرگواری <تصفيق> با برای برای برای یقین انجام میدید مقلب شمایی ماجا با خدمتون آرزم آقا این سؤال خود بنده هست برخی فلسفه ماهیت را حد وجود درست میدانم این س... کلام انتهاش وحدت شخصی نیست نه نه نه ببینید برای ماهیت ادهی میگن که ماهیت این وجوده مثل آقای فیادی منم به این معتقدم. کلبته من یه تفصیلی درش قائل ادهی میگن حد وجوده، ادهی میگن سرابه، اصلا ماهیت ولی هیچ کدوم به وحدت شخصی منجر نمیشه غلط هست، اونی که میگن سرابه ندارم، من غلطه چون باعث سفزده در ماهیات میشه در حالی که رنگ ها تعمائن ها که امور لذا سراب من قبول ندارم حدم در کمیات قبول دارم ولی در کیفیات قبول ندارم لذا میگم ماهیات بعضی یا عین وجود مثل کیفیات و جواه بعض یا حد وجود مثل کمیات بعد یا نسبت وجود هم. ولی اونی هم که میگه سراب لزومن مثلا آقای مسبا قائل به اینه که ماهیت در خارج نیست ولی قائل به وحدت وجود هم نیست لزومن اونو بیدرپهی نداره منتا توضیح لازم داره که الان فرصتش نیست. نکته پایانی هست. نکته پایانی بنده برد. دانشگاه وارلون و مرسه امام کاظم در خدمت همه عزیزان هستم هر وقت خواستید وقت بگیرید هستم در خدمتتون که هر بحث منطقی فلسفی نه ما از اوتش بر بیاد ادعا نمی کنم همه چیز بلده مه اونی که عقل قاصر بنده بتونه در خدمتتون بسیار محبت فرمودید لطف فرمودید استفاده کرده خدا انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل علی محمد و آلی محمد خیلی استفاده کردیم حاجبا قربون شما به سلام و زنده بشین استفاده ما.